من خیال میکنم که اون قزل 188 نسخه مرحوم خانلوی در نظر بازی ما بیخبران حیرانند من چنینم که نموندم دگریشان دانند رو خوندیم یه چند بیتیشم معنی کردیم مثل که معنی نکردیم حالا پرگاه رو معلوم میشه و باید چهار ردیم یه حال میگه نقطه پرگار وجود هم. ولی عشق دانت که در این دایره سرگردان این چقدر تناسب را کرد اولا پرگار وسیله دایره زدن دیگه، و شنها کاری که میکنه دایره میکنه. بعد دو تا نکت داره دو تا نیش داره یکشون وسط و ثابت یکی دور میزن که درسته که آقلان نقطه پرگار وجود ولی وقتی که کار به عشق بیفته معلوم میشه که اونا در این دایره یعنی ای که خود پرگار میزنه سرگردونه برای اینکه یه لنگ پرگار سرگردون یه لنگش ثابتی آشقان نقطه پرگار بوجودن ولی آقلان عشق داند که در این دایره سرگردانه خاجه با پرگار خیلی بازی کرده خیلی و چیزه قشنگ میگه آسوده بر کنار چو پرگار میشدم میشدم یعنی میرم اون لنگ متحرکش میشدم آسوده بر کنار چو پرگار میشدم دوران چو نقطه آخوزت در میان کرد مثل اون یکیله این اون نقطه بست نظاهر این فراغون داره یک جا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 به دیگر یعنی با یک کلکی اهده با لب شیرین دهنان بست خدا ما همه بنده با این قوم خداوندانه سوفی معتقدن که هیچ موجودی غیر از انسان عشق نداره و ملائکه داره احوال ثابتن یعنی خلق شدن برای اینکه روکو کنن خلق شدن برای اینکه سجود کنن خشم و شهوت درشون وجود نداره بنابراین هیچ کاری جز اون وزیفه که براش خلق شدن نداره در حالی که انسان هم یه جنبه امسانی داره هم یه جنبه حیوانی یعنی از بدن حیوان به اتحام منی از فرقی با حیوانات دیگه نداره خشم داره شهوت داره خوردن داره خوابیدن داره با اینا هم سعی میکنن اختیار آدم بکشن طرف خودشون دیگه با آدم این وسط چیزه آدم این وسط می تکلیفه که چی کنه اگه به طرف انسانی متمایل بشه مقامش از فرشته میره بالاتر برای اینکه فرشته هیچ کاری نه مجبوره اون کار و اگه به حیوان متمایل بشه از حیوان پستره به دلیل اینکه حیوان نمیفهمه رفتنیش ولی امسون میسن به همین دلیل حالا داستانای مفصلم دارم عرض کنم که یه قصه ای هست از قران قصه هاروت و ماروت نمیدونم چه نید نشون دید هر حال یه کتاب درجی یکی هست که نام فرهنگ تلمیحات مال دکتر ویروس شمیسا همه این قصه ها رو نقش کردم الان اینجا قصه بر شما که نمیتونم بگم داستان دوتا فرشته است به خدا گفتن که تو چرا آدم و خلیفه خودت کردی در روی زمین که خون می‌ریزه و فساد می‌کنه و بزار بعد وقتی وجود میاره و حال اینکه ما همش تو رو عبادت می‌کردیم، سجده می‌کردیم، رکوع می‌کردیم. خداوند فرمود که من چیزی رو می‌دونم که شما نمی‌دونید. گفتن چطور رو آدمی آدمیزاد اختیار داره و مسئولیت داره؟ گفتن خب ما میتونه گفت نه گفتن که چرا؟ خب میتونین به صورت آدم در بیان برین به زمین و وسط مردم زندگی دو دوتا برشده البته اصلا استاد من مرهون دکتر موین یه مقاله نوشته و نوشته که هاروت و ماروت صورت تسکیب شده اسم اروتات و امرتاته که در فارسی شده خورداد و مرداد و اینا در اصل اسم این برژه ها اسم دوتا فرشته هستن اسم ماهای دیگه شمسی هم اسم فرشتگان دیگری هستن به هر حال فرداد و مرداد او معتقد که به صورت هاروت و ماروت اومدن در آن و قصه این است که آمدن دو صورت آدم شدن و چون علم زیادی هم داشتن در آسمان ها و اینا آمدن مردم بسیار محترمی نشستن و شروع کردن به قضاوت در میان مردم ونی آمد پیش اینا و آقایون قاضی گرفتارش گرفتار شدن چشم عبرو کار خود چه کرد و گفتن خانم ما نوکر شماییم یه گوشه چشم انایتی ما بکنیم اینا گفت که نه اگه من علم سهر بیاموزین من اون وقت ممکنه که یه پکشو حالتون بکنم اگر من بفتن خیلی او علم سر به این زن آموخت و این زن هم ستاره شد رفت به آسمان و ستاره زهره اون زنه که بهش میگن بیدوخت و بعد اینا موندن حالا کارهای بعد کرده بودن اینا اینا موندن همونجور بعد بخت خدا گفت حالا دیدیم که حالا چیز اختیار می کنیم. عذاب دنیا رو می یا عذاب آخرت رو گفتن نه ما طاقت عذاب آخرت رو نداریم در دنیا مرکالی می خواه خدایا در دنیا رو بعد میگه که اینا در چاهی در بابل به یک موی سر آویزونن و هر کسی کنار اون چاه برسه و با اینا برخورد بکنه به اینا چیز می آموزن سهر می آموزن. یو علمان الناس از سحر به مردم سر میآموزه و حافظ یه جا میگه که رتو از این غزل بایدم شدن سوی ها رو طبابلی صد گونه ساحری بکنم تا بیارمم اشاره می‌ینیس این است که عشق جز مختصات آدم یه جه دیگه باز حافظ میگه فرشته اش نداند که چیست قصه مخواه بخواه جام و شرابی بخواه که آدم بیست. این که میگه که عهد ما ما یعنی بنی نوع انسان عهد ما با لب شیرین دهنان و از ما همه بنده و این قوم خداوندانند خداوند یه معنی صاحب و مالک اینجا هستیم که ما همه بنده ایم کداغندم یعنی صاحبش دیگه مالکه برد. این اشاره به عشق هست که در وجود آدمی سرشته شده و گواهیم به میت تعبیر میشه اون غزله خیلی معروف و حافظ باز دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند باز اون میخانه میخانه عشق یه جای دیگه خدا همینو سریح میگه میگه ور در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی در آنجا تنت آدم مخمر میکنه گل آدم اونجا میسازه در میخانه عشق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 فارسیش میشه پشیز فلس ماهیر به فارسیش میگن پشیزه یعنی چیزی مثل سکه پول و مفلس یعنی آدمی که سرکاش با پول کورد افتاده دیگه پول بالاتر پولای زرسی نداره میگه ما مفلس هستیم هوام به معنی میل و آرزوست اصلا در عربی هوا معنی عشقه هوای میم مطرب داریم یعنی میل و آرزوی مطرب بریم چه خاکی به سرمون بریزیم اگر خرقه پشمین رو نگیره خرقه صوفی عزیزتر این چیزشه سند ارتباطش با سلسله شه. از دست پیری که به اون سرسه پرده این خرقه رو میگیره و هیچ وقت نباید از خودش جدا بکنه وقتی کسی حاضر بشه اینو ببره گروه و بذاره ببینید که در چه حالیه در ضمن باید بگم که یه سنتی از یه بار مثل این که گفتم اینو که شاعر عربی بود به نام سلم این سلم معروف شد به سلم خاسر خاصر از خسارت و قوسین یعنی زیانکار این سلم خاصر علت این که به این معروف شد این بود که مصحف داشت قرآن نوشته جلد درده تمام داشت رفت می این مصحفوت رو گذاشت شراف گرفت <تصفيق> و به همین دلیل اونجایی که خواهجی میفرمایند فرماند که در همه دیر موقان می ایز چون من خرقه جایی گروه و باده و دفتر جایی احتمالاً ای به همون عمل ظلم خاصره که مصحف و گروه باده گذاشته این از که مفلسانیم و هوای میمطرب داریم آه اگر خرقه ی پشمین به گروه نستانم اگر خرقه ی پشمین رو به گروه نگیرن من چه خاکی و سر خودم بریزم و گله از یار اینجا باید یه علامت سوال بزرم لاخ عشق و گله از یار زهی لاف درو اش بازان چنین مستحق هجران میگه آدم عشق اش بگه عاشق هستم بعد از محشوقش هم گله کنی میگه چنین عاشقانی مجازاتشون هجران. مستحق درسته و مستحق درست نیست مستحق یعنی استحقاخ دارنده همچنین کارمند دولت میگن مستخدم دولت در حال که مستخدم اسم فایله یعنی استحقام کننده یعنی کار بودیم. اون کارمند استحقام شده هست مستخدم نه مستخدم ولی خب اینا رو حالا در حال عادی میگم مرحوم تغییزده هیچ وقت نمیگو مستخده یا مرحوم بعد یا زمان همیشه میگو مستحق هیچ وقت نمیگو مستحق یا کرامت نه کرامت نصیب ماست به هشته خود آشناس برو که مستحق به کرامت سناختاره. یک کسی که لاف عشق بزنه و در این حال گله از یار بکنه لاف دروغ روخ میزنه اصلا لاف زدن به معنی چیزای بی حقیقت رو به خود نسبت دادن. من چنین میکنم من چنان میکنم بی خودیه لاف وقتی بگن یعنی که اگر ثابت نشده خدا حافظ میگه که چل سال بی رفت که من لاف میزنم که از ساکنان درگه پیر مقان منم این لاف میزنم اینجا حافظ نمیخواد بگم من دروف میکنم ولی میگه دعوی میکنه حالت این دعوی بره میگه کسی دعوی کنه که عاشق و از یارش هم گله بکنه این دروفه, این دروفه. و چنین اشوازی باید گرفتار خوری بشه رخ او دیده من تنها نیم ماه و خورشید هم این آینه میگذارن این همین باید جدا از هم نوشته بشه هم که تو نسته مران خاندری میدونید که برای اینکه شما کسی رو ببینید نقش اون شخص باید توی چشم شما بیفته. و من کسانی که الان میبینم تصویرشون توی چشم من هست و از بکنید میبینید که هست این تصافیه. بنابراین چشم رو تشبیل کردن به آینه یا چیزی که تصویر رو مرکس میکنه میگه جل به روخ او که البته مراد حق و معشوق عزلی و است میگه جل به روخ او دیده من تنها نیست اما آینه دار و آینگردان به معنی مشات هست. کسی که اه, زینت میکنه آرائشگرد. نه فقط چشم من نیست که جلبگاه رو خروز. ماه و همین آین رو میگردونه. یعنی ماه و خرشیدم آینداره ما شاطه جلبه رخ او هست به همین دلیل باید هم و این از هم جدا بشه گاه رخ او دیده ی من تنها نیست ماه و خورشید هم این آینه می‌گردانند آفتاب خورشید به شب پره عما نرسد که در این آینه صاحب نظران حیران شب پره خوب باش پاپاش چشمش از ضعیفه. طاقت نور شدید نداره همین دلیل روزها میره تو گوشه های تاریک میشه جایی و شب گروپ که هوا تاریک شونه به خلاف نور زیر قرمز رو خیلی خوب میده یعنی تو تاریکی خیلی خوب میده یه سلسله یه دسته حیواناتی اصلا حیوانات. مرغان شکاری که شب میان شکار یکیش جغده جغد هم بزا باید برید توی تاریکی اون چشمای درشت نور شدید و تحملش ندرد ولی شب شبی که شما در ظلمات جلو پاتون تا یه قدمی نمیبینید او کاملا موش صحرایی رو که از بزرونش در اومده اون داره میره که اه خسارت برسونه به تهزار قدم به قدم میبینش و درست در جایی که دیگه نتونه فرار کنه یعنی لونهش نزدیک نباشه و راه گرزینش چه میاد به سرش و این حیوان خیلی به کشاورزان مهربانی و براشون مفیده و نمیدونم به چه مناسبت معروف شده این که در ایران به این حیوان حتی سعدی میگه که ماری تو که هر کراف ببینی بزنی یا بوم که هر کجا نشینی بکن معتقد بدم که جغفت ها پنابره اونجا تو قراب شد اعتقادی بیابت <تصفيق> به علت گوشه نشینی و گوشه گیری و رفتن تو بیرانه ها و جاهای تاریک این فکر کرد میگه شب پره کور که نمتونه وصف خورشیده بکنی فرانه که خورشید که بیاد اون باید بره پنهان یه چیزی داره سعدی گر نبیند به روز شب پره چشم،, چشم آفتاب را چه راست خواهی هزار چشم چنان کور بهتر که آفتاب سیاه نمیشه بگیم آفتاب سیاه بشه تا جناب ایشون چشمشون ببینه جهنم که ندیم وست خورشید به شپره اعما نرسد شپره هم حیبونه خیلی خوبیه موقع غروب میاد بیرون. بیرون و خوراکش از حشرات و سوام و هوام و حیبونات گزنده و حیبونه هست رو یه انواج سوکی میده بیرون گوشهای بزرگی هم داره مثل قیف انواجی میده بیرون این انواج وقتی میخوره به اون حیبون بار میگرده به خودش حس میکنه دقیقا تشتیزم در کجا صافت دیگه میگیرش اغلب دیدید موقع پرواز میرسه تا مثلا یک سانتیمتری سیم تلگراف پوریمون حرف میشه برای که موج فرسده و میدونی جلوش بدون که ببین و میاد این حیوانات شکار میکنه این چیزها رو و میره در ذهب میگم گروه باقا هم همیزه هم میمون بسیار مفیدیست است و خوراکش پشه و به خصوص پشه و این حشرات است که شب فعال هستند. اون گوشتای لخم رونشو که اینجاها خیلی خوب بهره برده می‌کنن ازش مثل رون مرغ اینا ها از خوردن هم پشمش و اینا باعث بحث چیز یه زبانی داره شبیه زبان مار دراز میاد بیرون در آن واحد یعنی در یک صدم ثانیه میاد بیرون و پشه رو میره می تو یعنی پشه قبل از اینکه به چه خبره در افتی دنبال پشه. حالا گنده ترم گیرش بیاد میخوره این ولی اینا رو ما چیز نکردیم در اسلام که معتقدن که غورباقه مسخه یعنی آدم بوده و گناه کرده تبدیل به غورباقه شد چند تا ایگون هستن که موسوخ بهشون میگن یکی فیل، نه ها هم میگن هرون یکی فیل، یکی خرسه یکی میمونه یکی قرباغه هست یکی مارماهیه شاید بعضی پیونای دیگه باشه که اینا معتقدن که این حیوانات آدم بودن به علت گناهانی چسر بعد تفصیلش هم گفته شده ارز کنم که در قرآن کریم آمده است که روحی از یهودیان به نام اصحاب سبت سبت یعنی روز شنبه شنبه تحپیل یهودی هست اینا ماهیگیر بودن و وقت که برای ماهیگیری روزای هفته ماهی دوم به تلیل اونده روز شنبه که میشد رو اونا پست کرده بودن که کسی نیست میوaden فرابون، فرابون میاد بعد اینا یه فکری کردن گفتن خب ما چیزی نمیکنیم شنبه رو زائر نمی کنیم ولی جمعه شب دامو میاندازیم صبح یه‌شنبه میگیریم می جلای که جوری زده گفتن یه دو روز این ماهی مبسود گرفتن یهوه خدای یهود که بسیار دیره مستخدیرم هست و میگه من تا هفت پشت افراد رو به گناه پدرشون عذاب میکنم حالا <تصفيق> این در کتاب مقدس در تورات هست خیلی آتش ترف میشه به شما اعترام دوست شنبه رو شکستین و بهشون نزید که کنو خاصه خواستین تبدیل روشید به میمون های زیانکار از اون روز میمون تشک میاده وصف خورشید به شب پر ری نرسد که در این آینه صاحب نظران حیران هم. اینجا در این حال که صاحب نظر به اون معنی است و خرشید به معنی ذات حق و شب پرم به معنی مردم جاهل و نادان و اوان ناسه در این حال خورشید رو با چشم معمولی هم نمیشه دید. یعنی چشم بینام نمیتونه به خورشید نگاه کنه. و کور میشه اصلا. ادهی هستن مرحوم استاد امان ترموز که من از دهی اومدم مرحوم پر از ده بشروگه که مردم اینجا شهرکور هست. برای اینکه ناحیه کبیری است شبا فوقل آزه سرد میشه، بسیار سرد میشه و اینا صبح زود میان سینکیش آفتاب میشه و چشمونو میدوزن با آفتاب بعد مدت شبکیه اینا آسیب میگن و شب که چشمون جایونه شب که اینکه نمیشیم، صاحب نظران شبقره کور که هیچی کسانی هم که چشم حسابی دارن در این آینه حیرونه اگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار چشم سیاه مشروع چه کار میکنه؟ هم مستوره. یعنی پوشیده است هم مستور در حال که مستوری و مستیر ضده هم. بنده الان اگه سر سوزنی از این امول خواهز خورده بودم و نشسته بودم اینجا تا دو کلمه اردازم معلوم بود که حالم خرابه. اینه که نمیشه میگه ولی چشم سیاه تو این کار میکنه هم مستوره هم مسته و شاید مگرم یعنی شاید مرا چشم سیاه تو کار یاد بده وگر نه همیکست اینجا یعنی هیچ کس مستوری و مستی رو با هم نمیتونه داشته بشه از اندیشه ما مقبچگان بعد از این خرقه سوپی به گروه نستانند اولا اینجا این فرمید که به گروه نستانند اون چند بیت بالا در بیت پنجم بود مفلسان این هوایی می محجب این تکرار شده خافیش به گرونه هستانند این احتمال این هست که حافظ یه بار یکی از این بیت رو سروده بعد یه بار یه بیت دیگر سروده قاسته عوض کنه ویزه جای اون یکی تو بعضی نصخه این بیت بوده تو بعضی نصخه اون یکی بیت بوده مرحوم خانلری هر دوش آورده و الا به نظر من میاد که اون بالایی مفلسانیم هوایی هوایمی مطرب داریم بهت بهتری هست از این پاینی. گر گرشونده گه گر هزن بیشه ما مقبچگان مقبچگان این خدمت بزاره میخانه برای این که مقان میخانه دار بودن و بچه هم اونجا خدمت میکرده می‌دونید که امت مسلمان می میشده شراب بیندازه و بفروشه نه اینا فقط میخورده میخریده و میخورده انداختن و تریه کردن و سر کردن اینا ایناشو گذشته بوده برای کفار یهودی، مسیحی، زردشتی اینا این کارای پست رو انجام بدن و ایشون تشبیه اونجا فقط بخورن و اینه که میگه مقبچگان اگر از اندیشه ما آگاه بشند بعد از این خرقه سوفی رو گروه برنید دارم نزهت به نوزهتگاه ارواح برد بوگ توباد عقل و جان گوهره هستی به نسار اخشانم این صد درصد بفعرفانی نزهت یعنی گردش و تفرج نزهتگه یعنی تفرجگاه نزهتگه ارواح یعنی جایی که ارواح میرن به تفرج و گردش میگه اگر بوی تو رو باد اونجا ببره برای پیشکش و برای نسار یعنی پاشیدن رو سره آورنده این مجده گوهر هستی رو عقل و جان به نثار می آبشاند به معنی پخش کردن و پرتاب کردن چیزی است که دارای اجزا باشد مثل دانه آبشاندن دانه آبشاندن یه مشک گندم یا جو دستش پخش می‌کنه زمین برای اینکه در این میگن افشان. عقل و جان گوهره هستی به نسار اخشانه حافظ زاهد دوست نداشته دیگه و اینکه ظاهد خودبین میشده ظاهد بعض یه مدتی نماز کندن و قرآن کندن فینکره پسر خاله خدا شد. بعد ناصر پلو که میدیده میگفته خب این مرد که قیشش که میتاره شد لابد این تو جهنمی رو بومش. یه کاری به باطنشو این اینکه این چقدر آدم خوبی روچه که نداشته که این از که زاهد خودبینی میاره محافظ یه جمعه میگه زاهد و عجب و عجب یعنی خودبینی زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز خود او را سمیان با که اینایت من روشم اینه مستی و نیاز زاهدم روشش اونه قجب و نماز تا ببینیم که یه جدی که میگه یه زاهد قرور داشت سلامت نبود راه رند از راه نیاز به دار سلام راه که حافظ هیچ میونش با زاهد خوب نیست در زم بگم که شیخ چند بار گویه گفتم بازم میگم صد دفعه بگم کم <تصال> شیخ که میگه حافظ عوضاً معنیش آخونده امروز چون امروز روز میگیم شیخ و در نچه وقت که میخونیم که شیخ مثلاً فلان فکر بونیم که آخوندارم اصلاً این نیست شیخ مرحله دوبومه یعنی مقام دوبومه در سپیلسله تصف اول پیره که یکیست در حلسه یک بعدش شیخه برای اینکه پیر در ده جا مثلا 20 جا خانقاه ده نمیشه که همه اینجاها باشه که مرتضی علی نیست که گفتن مرتضا علی رو یه شب چه جا مهمون کردن حضرت هر چه جا تشک بود خب مرتضا علیه ولی پیر نمیشه یه جا بیشتر بنابراین جای خودشی کسی رو اونجا در هر خانقاهی جدا او روش میگن شیخ و شیخی که حافظ میگه به این من. اون کسانی که ما امروز به نام شیخ و آخوند و اینا میشنسیم حافظ زا باعث، زاهد و امثال اینا از شما اسمید باعثان که این جل به در و منبر به خلبت میرسند و آن کاریدیه نیکنم و حضارت جایی ولی شیخ معنی توفیانه داره اصلا در تیگه شیخ امروز ندید زاهد ار حافظ نکند فهم چه شد خب اون نمیتونه فهم بفهم در ضمن باید بگم که فهمیدن رو ما تازه ساختیم قبلا فهم کردن میگه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 مارون پور زانفر هم همیشه میگفت فن حرف شما رو فهم نمی کنه نمی فرمود که نمی فهمه زاهد در رندی حافظ نکند فهم چه شد دیو با ویزد از آن قوم که قرآن خوانن زاهد میگه دیو خودش هم میگه اون قوم که قران می یعنی معنی اصلی قران خواندن اینه بده قسمین حاله شنبه هم از همونه شبت شمبه حاله انا هر کدوم شما قواهی داشتن حتی برای خود تصوف شما بخواین تعریف فیدو کنین مثلا پنج هزار تا تعریف می به اعتبار مستایل مختلف یعنی خیلی چیز گلو بنابراین مسائل مربوط به خرقه دادن و گرفتن این حرف هم همیتونه اینا خیلی آداب و ترتیبایی مختلف داشته که باید برای دیدن جوزی شروع روزو کنید به کتابایی که در باری تصفت نوشتید خب ستا که این بزاری چنده میدرد کنید؟ سد و مستقل مستقل مستقل. اسم فایل و اسم مفهول بله اسم فایل مستخدم اسم یعنی استخدام کننده مستخدم اسم یعنی استخدام شدید من روخ شعابی غزل رو, رو روون کردی غزل دست نه این غذا که بیوارد آلا میده باید باید که شش تو باید چو بینشینند بینشد آو کس گفا دلخواد چو بر ز ظلف انبرین جانها چو بگشایند بفشانند زه چشمم لعل رمانی چو میخندند میبارند زه رویم راز پنهانی چو میبینند میخاندند چو نشینند برخیزند نهال شخ در خاطر چو برخیزند بنشانند برخیزن. به گوش گیران را شد دریا چو دریا, دریا, دریا بند دریا بند روح روح روح, ببشت. ببشت. روح کیزان نگرد آنند. نگرد آنند. منصور از مرادانان که بردارند بردارند به درگاه حافظ را چو میخواند. نامن. چون مشتاقان نیا دارند نیا دارند چه با این درد اگر بند، دربندی چه با این درد اگر دربندی درمانند درمانند بسیار من دوباره این قضا میخونم به دلیل اینکه تمام تکیه ها باید کلمه آخر بشون سمنبویان قبار غم چو بنشینند، بنشاند. پریرویان قرار دل چو بستیزند، بستاند. به فطرها که جفا دلها چو بربندند، بربندند. به ظلک انبرین جانها چو بچایند، بپشاند. ز چشمم لعل رمانی چو میخندند میبارند ز رویم راز پنهانی چو میبینند میخوانند به عمری یک نفس با ما چو برخیزند لنشینند برخیزند نحال شوق در خاطر چو برخیزند گنشانند در شک شگیران را چو دریا بند دریافند مهر از سحر خیزان نگردانند چو منصور از مرادانان که بردارند بردارند بدین درگاه حافظ را چو میخوانند میرانند در این حضرت چو مشتاقان نیازارن، نازارن که با این درد اگر در بند درمان است درمان اولا این یک قذل آکروباتیکیه بچه حاج حافظ با این الفاظ یه نظاری بندبازی کرده در حقیقت و هیچ قذل دیگه حافظ به این صورت نیست که با این الفاظ اینجوری ترتیب داده باشه و کارایی کرده باشه و رو و بیشتر جوش به این الفاظ و روابط اینا با شد خیلی هم زیباست ولی یه ذره غزلش خوندنش و درکش یک کنگ سخت علاوه غزل ارفانیه در حیران همهش من اول اون بیت آخر رو یک کلمه میگم و بعد برای اینکه بیم سر غزل و تحصیل صحبت بکنیم یه چند دقیقه چیز می کنم این بیت آخر که می در این حضرت چون مشتاقان نیازارن نازارن که با این درد اگر در بند درمانن درمانن دو تا بیت دیگه می خونم این یکی بیتی که مرحوم استادم هم میشه شه می هر که در این فضل مقربتر است جام ولا پیشترش یکی <متحد> <تصفح> هم یه شعر خود حافظه میگه منو مقام رضا بعد از اینو شد شرقی که دل به درد تو خوب کرد و ترک درمان تو. میگه اگه نیاز بیارن به این درگاه ناز در مقابلش میگونه و با این درد اگه فکر درمان باشن صابشون پاکه برای اینکه این درد خودش مهم‌تر از درمانش این این قصه است این بده حالا کمی استراحت بکنین تا بعد بنده بعد از باقی کارا چه من دوران چیز کنی گفتم حالا نسخهشم ندارم به حال انقدر ایشون توی گرفتن و دنبال کردن تو من که راه تلفن کردیم به دخترمون دختر اونم گفت که من ندارم نسخه گفتم ببین شاید پیدا کنی نه یکی از شاگردام پسر نجف درياباندری گفت چی می‌خوای گفتم اون فن نگارش گفت من دارم 19 داد به ما و بعد من رفتم تهران یه نسخه از چاپ دوم که فرم فرم 16 صفحه 16 چاپ میشد. داده بودن به من که ببینم که غلط داره قلطنامه تنظیم کنم معمولی در چیزا اونم داشتم که چاپش خوب بود او رو گرفتم و بعد نشستم و تقریبا نزدیک که دو ماه این قلط های این کتاب هماری گرفتم به طوری که دیگه هیچ قلط نداشته باش از اون جاهایی که غلط نداشته یک کلمه که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 دوस्ताना و موضوعات دیگه و آخرش هم یه مقداری راجبه اینکه رمانتیسم توی کلاسیسیسم چی، از این حرفا بیشتر به آخر هم کردیم. دوره‌ای که من دانشجوی توی رشته اداب فارسی. خب، اصلاً اینتم. چاش. اگه به نتیجه خدا خیرت بده. و هر حال، بله این کتاب تاپ شد. و کسی اگه بخواد چیز نوشتن فارسی رو یاد بگیره واقعا راهنمای بدی نیست حالا من دیگه نه از کار خودم تعریق کنم اما راهنمای بدی نیست نسبتا دقیق گفته چیکار بکنن هر کسی در هر مرحلهی هست چیکار بکن تا کارش گروس خب سمن بویان ببارقم تو بنشینن بنشان طبیعیست که سمن بویان سمن یعنی یا سمن و سمنگویان یعنی معشوق، معشوقان میگه معشوق، وقت که بیشینه غم و رو برو برای که معشوق تا وقتی وایستاده است هنوز به دام نایمده و امیدی به وصلش نیست اما وقتی نشست به قول خود خاجه شیراز میگه بند قباط رو با کن بگو شا بند غبا ای مهر خورشی کرا. تا چو زلفت سر صودا زده در پا فکنه بند غبا رو باز کن ارز کنم که میگه اینا وقتی که بنشینند قبار غم از بین میبرند. برند پری رویان قرار دلت رو بسکیزند بستانند برعکس وای از اون روزگاری که احمد خانم بره توان خیده پری قرار دل تو بستی زن بستانن وقتی سر جنگ باشه قرار دل آدم رو به فترا که جفا دلها چو بر بندن فر بندن. فترا یک چیزی اون از قلاب کنار زین پشت سوار که بعد با کمن با تنابی که سوار داشته اگه سیدی می کرده یا تو جنگ بوده اگه سر دشمنی چیزی می بریده یا اگه توبری داشته یه باری که می خواسته بره این رو به اون فتاک می بسته. اگر که دلها رو به فطرها که جفا ببندند دیگه بستند دیگه وای به روزی به فطرها که جفا دلها چون بر بندند بر بندند دوم دو برای تحکید وحشی واقعی که ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم امید به هرکس که بریدیم بریدیم دل نیست که بوتر که چو برخواست نشیند. از دوشه بامی که پریدیم، پریدیم. رم دادن سیده خود از آغاز غلط بود. اکنون که رماندی و رمی بیم، این دو قومی برای تحکیده. به فطرها که جفا دلها تو بربندند، پربندند. ز زلف هم جان ها چو بکشاین فکر شامن میگه اگر جان ها رو از خم زلفشون بیرون بیارن میریزن رو جان تا وقتی قدر و قیمت داره که در حلقه زلف او باشه وقتی از اونجا آمد بیرون دیگه نی افشانش افشاندن رو قبلا گفته به چشمم لعل رومانی چو میخندن میبارن لعل, <تصفيق> لعل نوعی از یاقوت یه قدری تر و یه قدری ارزان بهاتر و هملل، هم یاغود اکسید آلومینیوم آل دو او یکی از اینا زیبارش در رفتی میده این مال شوانی سای نه مال چون نیست مال هم یاغوت هم لعل اکسید آلومیوم آل دو و, و خیلی تعجب مکنی تمام خاک که در دنیا وجود داره و یه بای قلاقش سننار میارزه اونم فرمولش همین آل دو اپنج منطقا لعل و یاغوت تحت فشار زیاد و حرارت زیاد متبلور شدن کریستالایز شدن در حالی که خاک روس یعنی مت... به صورت بلور نیست این تفاوت به همین دلیل معادن لعل و در میون خاک روس. در خاک یه وقت یه برقی میزنه یه ای میزنه یه حرارت شدیدی وقت میرسه یه رگه یه از این تبدیل میکنه به یافو یعنی متبلده و بزرگترین معدنش هم در جزیره سیلان سرندی الان سریلانکا سلیلا، بشون که اونجا خیلی هست رمان یعنی انار تو قرآن هم آمده فاکهتون و نخلون و ما. رمان یعنی انار لعل رمانی یه لعل پرقیمت بوده که مثل انار مثل دونه انار برمزی شبیه دونه انار بوده میگه وقتی معشوقان میخندن از چشم من لعل رمانی میبارن مراد عشقه البته عشق هیچ وقت سرخ نمیشه اینو قبلا توضیحه ولی چون چشمه کسی بیریه میکنه به علت حجوم خون سفیدی چشمش سرخ میشه این رو در مقام مبالغه گفتن عشق خونی حافظ میگه عشق خونی به طبیبان بنمودن گفتن درد عشق است و جگرسوز دوایی داد یا اینجا لعل رومانی از چشم من میبارن وقتی میخندن لعل رومانی از چشم من میبارن زرویم راز پنهانی چو میبینن میخانن معرومه استاد خیلی این شعر میخوندن از های رنگ و از تپیدنهای دل عاشق و بیچاره هر جا هست و شد این همینه میگه تا منه میبینن معشوق هم خبرست در این کار دیگه وارده که چی داره میکنه و عمل چند چه نتیجهی داره اگه یه داشته باشه زرویم راز پنهانی تو می‌بینن می‌خوانن عمری یک نفس با ماچو بنشینم فرخس می گفت قرار تو باید نکش عاشق او که هنوز ننشستی جا گرم کردی به عمری یک نفس البته در ذهن بگم که لحظات به سال خیلی گذره یعنی طرف یه شباندزان که بیشینر چشم عاشق یه نیم ساعت بیشکر نمی. به عمری یک نفس با ما چو بنشینن برخیزن نحال شوق در خاطر تو برخیزن بینشانن وقتی بلند میشن تازه درخت شوقو در خاطر آدم نیمشن سرش که گوشه‌گیران را چو دریاوند دریاوند عشق گوشه که گوشه‌گیران می اگه به رسند بهش محصول اینه که اگه مراعات یه گوشه‌گیر رو که در عشق میگیزه بکنن تا به مراعزه او رفتار بکنن عشق او تبدیل میشه به مرواری چه مرواری دی این که خداوند مراد اون محشوبی رو که نسبت به عاشق مهربانی کرده میده این دور بایلا عشق دور نمیشه که سرش که گوشگیران را چو در دور در یابند روخ مهر از سهرخیزان نگردانند اگر دانند اگه بدونن روی مهرشون رو از سهرخیزان برمیگردن منصور این منصور اسمش منصور نیست من به اینجا وضعی مقدسی خدا وضعی هم دارم حالا آقای غمبری با, با چیز کنیم دوست کنیم اسم این عارف معروف که داره سدن حسینه حسین ابن منصور حل نمید. منصور اسم باباش ولی بسیار معروف شدن کسانی اسم پیدر ابن سینا پیدر سینا بوده خودش حسن یا حسینه حسین ابن علی ابن سینا ولی چیز مولانا میکه بو سینا اصلا به جهب نیستیم رازی صد دفع اسمونی نمیسن نوت دفع نمیسن زکریای رازی زکریای رازی اسم تدرشه با آدم بسیار مزخرفی هم بوده برای این آقای محمد ابن زکریای رازی تا چل سالگی بی سواد بده یکی از عجایب روزه بعد میفته تو کار کیمیاگری میره دنبال اینایی که تحقیقات مربوط کیمیا می‌کنن و شیطون تری بهشون میده که مثل رو تبدیل کنن به طلا و میرن مواد سمی و اینا می‌گیرن و گوگرد و نمی‌دونم صوبه و بساقت و اینا و دم می‌دونن و دود میکنن و بودای سمی و اینا سوینه شون رو رو خراب میکنه این بابای بیسواد سواد محتاجه تو کار کیمیاگری خب رتیجه هم نداره نزیجه این بود که چشمش خراب شد چشمش خراب شد و ناتار شد بره مراجعه با کنه به کهحال یعنی چشم به زشت کهحال منزه یه قاسو چای خورید فلفل گردی، آشقالی چرد تو کاغذ، داد دست گفت ده دینار میشه ده دینار تلا یعنی پنجا گرم تلا پیش رو خودش گفت این چه کیمییاگری که من اپله رفتم دنبال کیمییاگرری اینه <تصفيق> آمده یه قاشق به زتوار من داره می دهقیه. آمد چون که به خوندن در اون سن بررسید به جای اون سابقه کیمییاگریم داشت الکل رو کشف کرده. بزرگتر این کتاب طبی که در اسلام نوشته شده کتاب الهاوی مال محمد بن زکریای رازی است هنوز معلوم نیست چند جز داره گفتن هفتاد جرد بوده بس اجزازی نمیدونم من الان که چاپ شده یا نه تمامش به طور بود و اگر برای جامعیت یعنی تمام علوم بگیریم ابن سیناف پیلسوف اوله که همه رو میدونست بل ایچه به تنها رو بگیریم ابن سینا انگشتوچه رازی امه با رازی تقریباً 100 سال یه خود بیشتر از ابن سینا قدیمی تری خیلی قدیم هر حال حسین به منصور حلاج عرض کنم که صوفی بوده که وجودش خیلی خیلی موثر بوده و مثل همه آدمای بزرگ و آدمای موثر دوستان خیلی قوی و دشمنان خیلی قبی بستن. این آقای خمینی رو که گروهی اسمش رو حاضر می‌ستن ببرن و فکر میکنن که این خیلی آدم بدیست و اصلا ابلیسه یه دست دوستانم داره که تا همین حد حاضران سر خودشون در راهش بدن همین حالا بعد سالها که مرده. این نشون میده که این آدم بزرگی حالا آدم بعدی یا خوبی این کار ندارم وجودش منشه از سرگیه هلاج همچه آدمی یعنی دوستان داشته که جان در راهش میدادن و دشمنان داشته که آخرش دلکش کنن بعد داستانها داره حتی در نظام صوفیان بزرگم یه عده‌ای طرفتارش بودن، یه عده‌ای مخالبش بودن بنده یک کتابی الان دارم در زیر چاپ امیدوارم انشاءالله که همین امسال منتشر بشه به نام کارگاه خیال احوال ادبی ای از شاعران و نویسندگان کلاسیک سعدی، مولانا، بیهقی، سیاست دامه خاشنزامورد، ابن خلدون اینا رو گفتارهایی در اون کتاب دارم یکیش هم راجب حلاج و پس اینو بعد محروم شده منصور حلاج در حالی که حسین به منصور و هر حال حافظم میگه منصور چون منصور از مراد آنان که بر دارن بر به من یه میبست اون کسانی که میوه درخت مراد چیدن؟ میوه مراد رو دارن، کجا هستن؟ سر دارن. اما دار دوم، دار دوم بانی درخت. هم داری که آدم آوازون میکنن، دار بانی درخت. هنوز هم تو تیرون میگن دار درخت. در درخت. درون میگن دار، اصلا درخت نمیگن، میگن دار.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 آبیزونشون نمیکردن، کردن آبیزون کردن در 5 پنی دقیقه کار پنی دقیقا کمتر کار تمام میکنیم پیلتار. اینا یا یه درخت ساده رو یا دو تا درخت رو شکل صلیب رو صلیب ایسا داره دیگه ایسا رو هم دار سکنیم بعد این محکوم رو میبستن اون درخت اگه درخت بوده دستاش از پشت میوردن میبستن، پاهاش هم می بزرگترین شکنجه برای این بود که هموندو بند. کنم داره برای این این بعد از چند دقیقه تمام این شریانه رو و خون نمیرسه و در صبحش سیاه میشه با دردهای خورناک و این روزهای متوالی باید فریاد بزنه تا بعد بینیده این بدترین نوع چیکندس. از این تر این بوده که با سنگ بزنه یه صحنه از این سنگ وارون کردن و در ویژس دار زدن حسنک وزیر در تاریخ ویحقیل مفصل نقل کرده و اون بردار کردن حسنک وزیر به صورت یه جوزوهی یه سری جوزوه از پنج و شست جوزوه که برای تدویس در دانشگاه تیران تیعه شده بود و استاده همه استاده بزرگ دانشگاه همه شرکت داشتن هر کدومت درست کردن این ملسه بردار کردن حسنک وزیرم از خیلی قدیم به صورت اون جزوه در اومده الان با یکی دو دلار سوامی میتونید به نشر کتاب بگیرید این قصه بردار کردن حسنک رو از یعنی لازم نیست خود تاریخ به عقیر تیعه کنید بخونید توضیح و تفصیلم هم دادن همه ای چیزای مشکلش رو اونجا نوشتن و جوزی های اینجا چون سرش میخواستن ببرن به بخیستن برای خلیفه یک کلاه رو داشتن کلاه آهنی گذاشتن سرش که صورتش در اثر انداختن سنگ صدمه ند. بعد شروع کردن به سنگ زدنش واسه بودن به دار و مشتی رند راستین دادند که مردم که نمی‌مدن سنگ بزنن به اون یکی احترام بود یه تا آدم و بی سر و بیچاره رو پول دادن که بیم سنگ بیان سنگی اندازن ولی مرد میگه همون اول مرده بود برای اینکه ذهن انداخته بودن به دلوش که اینو به دار همون ذهن خفه کردن خوشبختانه و این ناراحتی رو و از همه اسونترش این بود که توی بارون کنن و در نحچه بارون در ظرف لاحقل یکی دو ساعت بابا بمید. این طریق دار زدم و به همین دلیلم گاهی شده است که کمک برسه و اینا را از دار بیارم پایین تو داستانهای عوامانه خیلی این صحبت هست که بعضی از پهلوانان طرف رو میگیرن میارن دار میزنن و بعد میخوان تیر بارون کنن دوستانشون میریزن و حمله میکنن و دارو رو محاصره میکنن و اینا رو میچن پایین یعنی اون تنابو رو میورن و از دار میارن سن پایین این حل غابیز کردن 100 سال هم ساید از عمرش کنیزاره خیلی کار تازه است بنابراین اگه کتاب قدیم این دار زدن و دار و دار و اینا فکر نکنید که همین داریست که ما دفین منصور هم همین کار کردن اولا دستاشو پاهاش اینا رو بریدن بعدم دارش زدن یه چند روزی هم رو دار گذاشتنش بعد از آشوب مردم ترسیدن جساد آوردن پایین سوزوندن و رو ریختن تو گونه دجل میگه چون منصور از مرادانان که بردارن بردارن بردارن, بردارن. برای اینکه منصور گفتود انالحق هنال حقی که گفته من خدا هستم معنیشم بود که منصوری در میون نیست من در وجود حق حل شدم فنا شدم و دوستان کسانی که میخوام میدونستن اینو کسانی که میخواستم پرونده به سلام دستاش گفتن آقا دعوی خدایی کرد بقی میگی کسانی که از میوه مرادو چیدن جاشون بالای داری به درگاه حافظ را، میگه حافظ هنوز اون سعادت رایده نکرده به درگاه حافظ را تو میخوانند میرانند وقتی حافظ در این درگاه میخوانند باز پسش میکستند میگن تو شایستگی این کار را هنوز ندارید هم دو نظرم میاد که میورو که دارن بعد میرن سر دار نه اینکه چون سر دار هستن میره دارن. من بیتر اقوانی کنم. یعنی که بردارن، یعنی چی؟ یعنی که بردارن، بردارن؟ به نظر ما هم که بهتر این که آخرین، یعنی هست داستن این قسمت رو آخر بگیم که از مراد نیوه به دست آوردن کسان این هستن که سرستون باختن. دو, دو جوره می‌شوند؟ شبکت هم؟ باستن. بهتر اینجور دفن. حالا اگر این هم... نه. نه. در این حضرت، حضرت به معنی مجلسه مثلا. در این حضرت چون مشتاقان نیاز آرند، یعنی آرن. در این مجلس اگر کسی بیار نیاز بیاره، در جواب ناز تحریب میگه گفتم هر که در این بعض مغربتر است، جام بلا بیشترش میگه چرا؟ چرا این کار میکنه؟ میگن تو خیلی عبلهی که با این درد خوش نیستی درد عشق از تندرستی خوشتر است گرچه غیر از صبر درمانیش نیست ولی بله؟ گرد دلیداری به دلبندی بده زای آن کشبر که سلطانیش نیست ماجرای عقل بردن پیش عشق گفت مزول است فرمانیش نیست آرفان در بیش درد را پادشاه اگر نان نیست خانه زندان است و تنهایی ملال هر که چون سعدی گلستان نیست میگه کسانی که با این درد با درد عشق دنبال تندرستی میان اینا به درد عشق نمیخورن به همین دلیل باید نا که با این درد اگر در بند در درمانه، در مانند در مانن. اینجا اولاً که مال نسخه خانداری میخواند، میخوانند پیشتره میرانند، اقفتره بمایی قافیهش میخواننده، درسته؟ بیت شیشم، قافیهش میراننده درسته؟ آه، ولی اون خوندن بالایی وعنی قراعت کردنه میگه راز رو میخونن این خوندن پایینی ونی دعوت کردن یعنی معنیش فرق اما هر حال اردو که قافیه نشد میگه آخه قبلش هست و این مضمون تکرار شده گفتم میگه سعدی بگه در بهش خستان درستی خوش کرد. این کسی که درد عشق داره و تا درمانشه این آدم بیخودی خودی اصلا قابلیت عشق نداره این که وقتی بیاد تلو معشوق جز ناز تحویل بمیکنه برای که با این درد کسی که در بند درمان باشه درمانده بیشه مزمون رایجیست خیلی یعنی تازه نیست که آدم بگی که دیزه خب ارز کنم که ازل بعدی هم یکی از شاخ حضال های خاجه است سوا میخوام بکنیم؟ برد بکنیم از بین نصفه‌ی من هست خلاه‌ها تو مسکت رو اونجا که معلومی هست چی باش می‌کنیم هلو برا خود کن بکنیم؟ حسن خلاه‌ها منرگیسی رو فقط با همین با همین عجلهش گذر که کرامت نمان برام دل <سؤال> آرد بذار کرا و جوابا تندلید تو از خرک را فزا را آن تو در این ایت ایت را فزا را هم یا به و کن خداوندی که من را به خدا می‌رساند، خداوندی که من را به خدا می‌رساند. که من را که به تو تو را و مرا آب دیده شد ما و اگر نه آشق و معشوق رازداران سه زیر ظلف دوتا چون گذر کنی بنگر که از یمین و یسارت چه قراران گذار کن چون سباب و نفش زارو ببین از پتاخل ظلپت چه سود بارانم نصیب ماست بهشده خداشناس برو که مستحق به کرامت گناهگارانم نمن بران گل آرز غزل سرایم و بست که اندلی به تو از هر طرف ازارانم تو دست دیر شو ای خزر پی کجسته که من کیاده می رفم همراهان سواران. بیاب میکده و چهره ارغوانی کن مروه به سومه کنجا سیاهگارانم خلاس حافظ از آن زلک تافدار مبا که بستگان کمنده تو رستگارانم. باز این همون بیت آخر قزل قبلیست یعنی که هرگز مباد که من از اون طور پتابدار خلاس کشم یعنی اصیر غم عشق بمونم این قزل شاه غزله یکی از شاه غزله حافظه که تمام بیتاش بدون استثناء شاه بیت و یک تون بیت یه ذره پایین تر نداره نوس خاص نوس زیره دو زولف و کنید گذار درست درست ها نرگس تو تاجداران بسیار پادوران و پادشاهان بیدن که اصلی به عشق برده خودشون، غلام زرخری خودشون شدن و غلام این شدن نمونه کاملش محمود غزنبی اولین پادشاهه که نام سلطان رو خودش ببرشد و قدرتش قدرتی امتهایی بود یه پسرا که با چچوپونی بوده هفتش ده سال دی این بچه رو می‌بینه از بیافه این بچه خوشش میاد و سوالی می‌کنه این بچه جواب مناسب میده و چرا خیلی تیز می‌بینه؟ میبینه خیلی بچه بابوشه به پدر مادرش میگه که اینو ببین به من من سعی میتونم که اینو کنم اینو نیکونه دهش بگرم که تو کنم رو قبول میتونم این قصه در نوروزنامه خیام هست می این همون عیاز به محرم. آقای براهنی در یه ای در مجله فیروسی مرگون پرمودودن سرنوش دوزخی آقای ایاز و شرح مفصلی داده بودن در باب اینکه محمود غزنوی واضح که جوزی داره با ایاز کارای بد بد این ابلهیست به این دلیل که محمود غزنبی امکان اینو داشت که دو هزار تا غلام مزکر و دو هزار تا کنیز زن بگیره که همه خوشبه از ایاز وقت در مرحض موت مرحض داشته میمیره میگه رو بگیم بیاد بالا سر من رابط میخواسته از اون کار باسته کنم کسی که نمی‌فهمه اینو کاری نمی‌چی کار کرده آها تمام اون زن‌ها، اون کنیزا و تمام اون غلام‌ها همه اون چیزی رو که عیاز داشته داشتن چرا یکیشون عیاز نشده؟ پس یه چیزی داشته عیاز که اونای دیگه نداشتن و مسئله اون بوده مسئله این که من نمی‌دونم حالا هم کرده یا نکرده من که وکیرشون نبودم سر طرفم که نگه نداشتن. اما این همه آدم اونجا بوده این یه عمر دست از عیاز نداره و آدم درست و حسابی زاهد عابدی مثل شیخ عطار حکایت های متعدد در کتابش درباره محمود عیاز بینید این نمیشه که این که این کار که انقدر پول ترسیل تحصیل و انقدر چیز نداره که و اون وقت موارد متعدد از مقره شناسی و نکت سنجی و حاضر جوابی و اون چیزی که حقیقتا محمود رو اون کرده اونجا گفته و در زن این من یه جای خوندم نمیتونم بگم که میگه که تو محمود اون میگه میگه تو غلام من بودی ولی من اکنون غلام تو میگه آه یونان اشارهی خاجب به محمودان باش. علام نرگس مست تو تاجداران خراب باده لعل تو هوشیاران است. اینجا هوشیاران نمی آدمای صاحب معرفت. آدمای با فهم همه اسیر تو شدند.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 میگه سخنچین، حالا میگن افشاگر در تومیه افشاگر تو باد سبا بود افشاگر منم عشدی چشمم بود باد سبا بوی خوش تو رو این بر برد و آب دیده منم راز دل من آشکار کرد وگرنه نه آشق و محشوق رازدارانه عاشق و محشوب هیچ راز خودشون رو برملا نمی اگر اتفاقی افتاد که حدیث عشق بیرون درس کرد به دلیل تو یا من نبوده یکیش باید سبا بوده یکیم آب دیده خمازم یعنی سخنچین زیر ظلف دوتا آتون گذر کنی بنگر که از یمین و یسارت چه بیقراران فکر کنید که معشوق، ضلطش رو دوتا کرده دیستوه بلند و بافته یا نبافته راه که نیره اینا تکون میکرد در این حال این آدم زیر اون زور زلط بالاترین قسمت سرشی کسی تو از زیر زلطی گرد کرد میگه وقتی از زیر زور که دوتا داریم میگذریم نگاه کن ببین از یمین و یسارتو یمین یعنی دست راست یسار یعنی دست چپ دو طرف که از یمین و یسارت چه میقرارانه؟ حالا اینجا چه میقرارانه هم ممکنه اشاره به اون دو لخت از بشه که تکون میخورن هم یعنی در یمینی اثار تو نگاه چقدر آدم به عشق تو بیقرار انتا نشستن زار کن چو سبا بر بنفش زار رو ببین که از تطاول زلفت چه سوزباران هم بنفشه، مثلا این ای که مینامگن بنفشه فرنگی نیست بنفشه تبریه، بنفشه ایست لما زندگی زیاده ساقه دراز نازکی داره که شبیهش میتونن به زل باید گلش کبوده و مثل که سرش پایینه رنگ کبود رنگ ماتم زبیدیست نیشان سوکره میگه مثل باد سباب تو در بنافتزار میگاه کن ببین که از تتاول یعنی دست درازی دراز دست که از تطابل زولفتو چجور اینا سودوار شدن؟ یعنی وقتی زولفتو به میون اومد دیگه کسی برنفشه رو اصلا محل نگذاشت کسی اصلا بازار او به کلی راکت. این است که سودوار میشستن اصلی به ماست بهش در یه بیت دیگری خاجه میگه که قدم طریق ما داره از جناسه ی حقیس برای بعضی از این پشت مقدسه ها که بکر ارز کرده هم که این بکره که رشش و میکنم که روزه میخورده و اونم که عرق و نمیمدن سر نماز میگیده میکنم این آدمی ساله این با نمازشون که بخوره ما برایش نماز بمیکنم حافظ یه قدم طریق مدار داره از جنازه حافظ که گرچه قرق گناه هست میرود به تا چشمت تو میرود نصیب ماست دهشت ای خداعشناست برو که مستحق اترامت گناهگارانه گناهگاری که میتونه کرامت و کرم خداوندی رو آشکار کنه اونی که مستحفه کرم خداست بنابراین ما گناه کردیم که کرم خدا را آشکار کنیم و بهش نصیب ماست امن بران گل آرز غزل سرایمو بست آرز یعنی رقصار گل آرز یعنی رخصاره که مثل گل من تنها به گل رخصار تو قزل سرا نیستم فقط من تنها نیستم وقت تو این مصرهای دوبار برویم قشنگه که اندلی به تو از هر طرف هزاران بولبول بول تو هزار تاست در این حال هزارم خودشانی بلبله که اندلی به تو از هر طرف هزاران هست. تو دستی سو ای خضر فیب کجه است گفتن که دوتا فیغمبرن در دو عمر جاوید دارن یکی خضر و یکی الیاست و الیاس در دریاها تو فریاض درمان دران می چایدان و خضر در خوش بود و گفتن که اسمیشو گفتن خضر برای اینکه که هر جا میده زیر پاش سبت سبت و کنگشم عبول عباس و قصه های بسیار هست از آبدان و زاهدان که اینا خضر و ملاقات کردن حتی بین آهمه ناس هم بود که اگر کسی چهر روز به نیدیت دیدار از خضر در خونه شد هیچ از دمیدن سوق این آسمان تاریخ سهرم نشده آجارو خونه از این خزبانی گفتم یک مربی نرز کرد و بعد بحث شروع کرد و کرد و این شد این بود نگاه کردیت سه دو سنه و اقال از این طرف میاد حالا ساعت مثلا سه و شب آمد رو گفت سلام علیکم مشتر ایش کار میکنی گفت دارم اینجا رو آبو جارو میکنم گفت این وقت شب چه وقت آبو جارو؟ گفت دیگه چیز دیگه بلکن دیگه حالا برحال آبو جارو کرم بخواب بودم گفت نه تو یه محصولی بگی دراخره گفتش که آره من محصول من آبو جارو کردم که راست خضر تو من خضرم عتیق بود با تو سرستون بعد قالی من خضرم تو تو خضرم هر چی میخوای بخو الان از من, oh well, <toes> من تو گه ول خون تو سر رسیدم داد قالیستم سرت کار راست گون من خضر تو تو خضری گفت ولی وای تو خضر این بیرو بکن فارو یه وقت نیایی که بیل نیست بیل یه هم دیده از حالا بیل چهار تومن قیمه از بود پاروز پارو سیزار گفتن <تصفيق> که چه بود زمت کشید گیره خود چی خز پاروز <تصفيق> برحال خضر فریاض درماندگان و گمشدگان میرسه اینی که میگه ای خضر پیخوجستی پیخوجستی یعنی قدمت مبارکی پیخوجستی یعنی مبارک قدم خود از شد، ای خضر خیفه جسد. که من پیاده می رفم همراهان سواران آب میکده بود، چهره عرقبانی کن برای اینکه در میکده مصدیست و راستی مرا به صغمه اینه آنجا حافظ از آن زلط تاقدار مراه هیچ وقت این اتفاق نیفته که حافظ از اون طرف طرف داره خلاس چرا؟ که بستگان به تو رستگارانه یه نکته هم هست باید بگم که قاعدتا در فارسی صفت و مصوف با هم متابقه نمیکنه. کنی می میگی مرد خوب مردان خوب نمیگی مردان خوبان زن بعد ببخشیم زنان بعد. یه نمیگیم زنان بدان ولی گاهی اتفاق میفته که صفت و رو با هم مطابقه میدن کلاس حافظ از آن ظلپتاب دار من باید که بستگان کمند تو و باید ولی میگه رستگاران و نظایر این که اینجا هست بیشه دوبون باز تو را سبا و مرا آب دیگه ست غماز وگرنه عاشق و معشوق رازداران هم رازداران فرد صفت متابقه نمید ولی این قاعده هست به ندرت گاهی اتفاق میفته که این کار میکنن یعنی صفت رو با موسوع متابقه میدن و این غزل حافظ یکی از اون مراره تو رستگاره میدونی؟ من اولا نمیدونم به فرهنگ نگاه کنیم به من نگاه کنیم دی تو اخر اپڈیٹ کنسیوئرอัลگار خلاصو اجو کو ببین اس طرح ناгран خلاصو کو تو دے این اون فزازون زولف رهایی خلاصو حافظ یعنی رهایی حافظ از اون زولف تاطور هرگز نباشه